الخیارو راجع, ال... راجع القثاء صفحه ثلاثمه و تسعه صفحه سل نه حالا اقسام خیار داریم خیار بوتهی خیار درختی خیار گلخونهی خیار چمبر حال اگر کسی مردا سوب کرد بیماری دیابت داره قند خون داره حالا مغز حالا مغز خیار اگر کسی مردا سوب کرد بیماری قند داره چه نوع یک چه نوع دو خیار رسیده بوته ای مغزشو بتراشه و تلخه خیار رو هم بخوره هم ملین مزاجشه ضد یبوست هم انسولین طبیعی داره قندخونش یه پونزه بیس واحدی میاره پاین خیار بوته ای. هم بسیار خنک خیار چمبر کسایی که بدنشون دونهی التهابی میزنه یا دونه ناشی از گرمزاجی میزنه بسیار خنکه باز از این خونکتر در منطقه نجف اشرف و کربلای معله. در کشور شریف عراق اونجا هم چیه مومنه صادری صادری باز خنک تر از خیار چندره خیلی برای رفع التهابات شدید مفیده خیلی خنک کسایی که رطوبت پوستشون کمه و پوستشون خشکه خوردن خیار تو جیره غذایی مطلوبه اما در روایات شیعه داره تو فصل سرما و یخبندون خیار نخوریم. یکی از عوارض سوشیه سبب میشه که آدم شکمو باشه و روده گشاد میشه و اینم مشکل آفرینه. باز مطالب دیگه از نقطه نقطه بزنیم انشاءالله تو بحث تبال اعمه از علامشو بر اونجا انشاءالله توضیح میدم الخیریو و دهنوه خرامای خیری خرامای خیری و روغن خیری یک گیاه ها واجه الخیری 83 و سه بار در سیدی نورسه جامل احادیس شیعه آمده در روایات مختلف باید توجه داشت خارج از کتاب یه حاشیه بزنیم باید توجه داشت که بهترین که بهترین درمان طبیعی و مفید ماساژ با روغن است ماساژ با روغن است حالا اقسام روغن یک بار روغن خیری یعنی روغن گل شبو روغن گل شبو دوم روغن زیتون سوم روغن بنفشه چهارم روغن گل سرخ پنجم روغن سیاهدانه ششم روغن کنجد هفتم روغن کندوش حالا امام رضا علیه صلات و سلام اینا خارج از کتابه که حاشیه دارم. حالا امام رضا علیه صلات و سلام در کتاب رسالت و زهبی صفحه 25 صفحه 33 و با ترجمش کتاب تبر و امیر صادقی صفحه 172 می بهترین درمان طبیعی و مفید ماساژ با روغنه حضرت فرمودم با روغن خیری یعنی با روغن گل شبو در اول هر روز از ماه کانون الاخر یعنی ماه بهمن بدن را ماساژ دهند با روغن گل خیری که میگیم خرامای خیری ایرانی میگن گل شبو با روغن گل شبو در اول هر روز از ماه بهمن که کانون الاخر بدن را ماساژ دهند این فرمایشات معصومین نور چشم ما حالا موامنام تو مسیحیت تو یونانیت ابن البيطار، الخيري نبات معروف، لهو زهر مختلف، بعضوهو ابیاد بعضوهو فرفری و بعضوهو اسفر و نافع من اعمال طب نوع زردش نافع میبخشه تو بحث دعمان های قال جالیوس جمله تو ح نبد تجلو تجل و یا لطیف لطیفتون, لطیفتون و اکثر ما تو جد و ها قو ظهارتیم یعنی تو گلش و فلابابسه من از ظهرات اکثر ومن ها ثروت بهطری میگه گل شبوی خشک ننفسش بیشتر از گل شبوی تازه این هم حرف های فائدة دهنه قال ابن البيطار في دهن الخيرين، قال التميمي لطيف محلل يوافق الجراحات وخاصة ما عمل من الأصفر منه بعمل آمدية از نوع الزردش وهو شديد التحليل لأورام الرحم كسي كيف رامشون رحم دارت خانمه فالاوران الكائنه في المفاصل کسایی که برام مفاصل دارن برای هر دو خوبه کسانی که گرفتگی عصبی اسپاسمای عصبی دارن اسپاسمای عضلانی دارن تقبب چه در روده چه در معده چه در اعصاب مغز و اعصاب و فعل و فی که اکثر من جميع الاذهان المتخذه میگه اثر بخشی مثبت مکانیسم اثر اندیکاسیون اثرش اکثر من جمیع الادهان المتخذه از همه روغن های دیگه اثر بخشیش در این چند مورد بیشتر اسپاسمای های عصبی اسپاسم های عضلانی ورم رحمی و ورم های مفاصل اثر بخشیش از بقیه روغن هایی که شمردم اسه روغن زیتون، روغن بنفشه طبی، روغن گل صاف، روغن کنجد، روغن سیاه‌دونه، روغن کندوش از بقیه روغن‌ها روغن چیه اثر بخشیش بیشتره و فعله فی ذلک اکثر من جميع الادهان المتخذه من سایر الازهار ازهار قهده چشم نه از سایر گل های دیگه اثر بخشیش بیشتر در این چهار موردی که توضیح دادم بله تقویت مو هم خوبه اما از این قوی تر چیه؟ بادام تلخ از اون قوی تر چیه؟ روغن سیادونه خالص از اون قوی تر چیه؟ روغن کندش روسته رشد موی سرها اما یه بار دیگه نه من رشد موی سر نمیخوام مثلا فرض کنید کسی خارش پوست سر داره یا اگزما داره از همه قوی چیه؟ روغن کشنه روغن کشنه یعنی روغن قاست و قاف سین ت دست دار و ید المراهم المحللة للجراحات مرهم تحلیل برنده جراحات موزعیه خوب. این هم خوبه اما از این قوی تر باز چیه قبلا ها گفتم مومیا مومیایی، عرقل جبال اون باز از این قوی تر مثلا اگر دستم و چاق و بارید ها با آب مقدتر میشورمش بعد صد و فونش میکنم مومنا. بعد این مومیا یا مومیایی که از ماده شیمیایی یا غیری سیاه رنگ، خالص شفاف برواقه این رنگ متالیکه هرچی شفافتر باشه خالصتره قیمتش اطلا گرونتر اطراف گنابار دوستای عرب کل استحبانات داراب فارس نه از خود رو اللای سخراهای کو میزنه بیرون بعد مؤمنان اندازه یه دونه ماش امروز میخوره اندازه یه دونه ماش فردا میخوره بعد محل شکستگی یا مویه کردن استخان یا محل قاچ خوردن پوس با چاقو امانندو یا تصادف این محل رو فونی افونی شستشو میکنم با آب مقتل مثلا با بتادین تا با تنتور یاد خلاصه زده افونی نبود با سرکه سیب زده افونی میکنم بعد مومیا تو آب حل کردم محل بریدگی رو مومیا میکشم بعد نگردم دیگه خون نمیاد. این پوستا به هم میچسبه بدون اینکه بخیه کنی گرفتین چی شد مومنان؟ اینم خواستم بگم از این روغن گل شبو قوی تره در اون چهار مورد که اول بود بله روغن شبو قوی تر از همه از که گفتیم بحث اورام چه در رحم چه در دست و پا؟ حتی از اون سیاه دونه که زد اورامه قوی تره که قبلن ها گفتیم روایاتو تو من ذکرهو عن الامام الصادق علیه الصلاة والسلام و السلام و قال وکر دهن البنفسج فزکاهو زک شد روغن بنفشه تبی پس حضرت تزکیه کرد روغن بنفشه طبی را یعنی گفت عجب روغن خوبیه و چقدر فواید خوبی دارد که قبلنا از قول رسول الله که به امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرموده گفتیم که قال رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم لا امیر المؤمنین علی علیه الصدام لو علم الناس ما في دهن البنفسج لحسوه حسوا اگر مردم میدونستان چقدر فواید در گل بنفشه خالص هست جرعه جرعه که گفتیم قوی این دارو در درمان روماتیسمای مفصلیه قبلنا توضیح داریم لذا اینجا هم امام صادق علیه السلام تذکیه میکنه با زنبولی تذکیه میگه چه خوب روغنیه و منافعی داره مقاله. سپس امام صادق علیه السلام فرمودن و ان الخیریه لطیفن تأکیدن و تحقیقن روغن خیری خرامای خیری یعنی روغن گل شبوی خالص لطیفون لطافتش به نحو حرکت نرم آهسته ولی اثرگذاری مثبت بیشتر خب حالا فرمایش امام صادق توضیح بدیم حاشیه بزن ان الخیری لطیفون این توجه رو باید داشت که روغن بنافشه طبی و روغن خیری گل شبو گاهی بر پایه روغن بادام تلخه یعنی تو روغن بادام تلخ بجشونیم بعد آبش صاف کنیم بگیم روغن خیری یا بگیم روغن بنفشه این برای روغن مالی بدن و ماساج بدن بسیار مفید است اما اگر به نفشی طبی یا گل شببو رو بر پایه روغن زیتون یعنی تو پایه روغن زیتون هم میتونی پماد کنی هم میتونی زمات کنی هم میتونی ماساج بدی هم میتونی بخوری و و ماساج رو خوردن چون دیگه سمی نیست اما اگر در پای روغن بادام ترخ باشه سمیه نمیتونی بخوری مسمومیت میاره این هم مؤمن حاشیه حاشه بده. مثلا اگر کسی بیماری ورم مفاصل دارد یا اگر بیماری شقاق بقول فرانسویه ها فیجر با قول انگلیسی و آمریکایی فیجر آنال فیجر اگر کسی شقاق مقعد داره و اگر کسی ورم رحم یا ورم زهدان داره درمان آن یک پماد و زماد روغن خیری که روغن گل شبوه بر پایه روغن بادام تلخ درمان ورم مفاصل و درمان شقاق مقعد دو ماساج دادن یا نشستن در گل شبوی پخته یا محلول شبو گل شبو درمان ورم مفاصل و درمان شقاق مقعد و درمان ورم رحم سوم خوردن خوردن گل شبو یا خوردن روغن گل شبو بر پایه روغن زیتون در درمان اورام نفریت نفرولوژی به شرط اینکه بر پایه روغن زیتون باشه تو روغن زیتون بجوشون در درمان اورام که نفریت حتی ورم رحم تا چه برسه به ورم دست و پا نظیر خوردن سیاه دونه حالا سیاه دونه با عسل بخوریم یا سیاه دونه رو روغن زیتون به جشونی دقیقه نظیر اون که بحثاش قبلا کردین عنل حسن ابن جهن قال را ای الحسن ابل عليه علیه الصلاة والسلام یدهنو بالخيري فقال لي الدهن حاجی میتونم با روغن گل شبو بدنمو ماساژ بدم حضرت فرمود بله این کار کن فعل امر استحبابیه فقلت اينه انت عن البنفسج وقد رويه سي عن ابي عبد الله الصادق عليه الصلاه و السلام ما رويه قال عليه السلام در بنفسه يكم بو داره اما گل شبو بوش خوشه من هم رعایت استشمام میکنم هم رعایت ماساج حسابه فهم بودیم؟ پس از روغن خیری بیشتر استفاده میکنم تو ماساج تو از روغن چی؟ بنفشه قال ابن الجم قلت له و انی قد کنت اکروه ریحه و اکروه ان اقول ذلك من خجالت میکشیدم که به زبان بیارم ولی ذاتن از بوش بدم میآمد لما بلغني فيهان ابي عبد الله فقال لا باس والمقصود لا باس به فانك رائحه الرائحه لا تنافي فضله و نفعو به صرف این که یه ای مختصر از نظر خودت که نظر شخصیه مثلا بد هست این سبب نمیشه که فضیلت و نفع نداشته باشه گاهی مؤمنان بعضی چیزا آدم بدش میاد اما به نفع خودش و مجموع است مثل چی عمو جو؟ مثلا سکات واجب بخواد بده خمس مال بخواد بده صدقه بخواد بده سکات فطر بخواد بده انفاقات واجبه یا انفاقات مستحبه مثل توسعه بر عیال یک بار مؤمنان انفاقات واجب است یا مثلا توسعه بر ایاله که مستحب واجب و یا مستحب مثلا خدا هر وقت بهتون وسعت رزق داد شما وسعت رزق بدید خب این که داری وقت میگذاری یا پول خرج می‌کنی خب از نظر نفس امماره و حدیث نفس که همه چی بر خودم میخوام خب نراحب دیگه بدت میاد و حال اینکه تمام این کارا خوبه برای دنیا و آخرتت خوبه مثال دیگه اینکه خودم شعور دارم خودم فکر دارم خودم عقل دارم خودم انسانم فاعل مختاره خودم میخوام آزاد باشم هر چی بگم هر کاری انجام بدم حال بیام خودم رو محدود کنم در چارچوب اسلام ولایی کش به فرمان امام معصوم یا امام عادل خب این به نفس امارم بر میخوره بیه. به حدیث نفسم بر میخوره بدم میاد این بدن بد آمدن از باب غلبه احساسات بیجاس اما مفید برای دنیا و آخرت نیست تو بحثه عقیدتی و و عمل اجتماعی در داخل کشور و خارج کشور منطقه و جهان بعضی افراد یه چیزی یاد گرفتن حاج اقام من انسانم بله بله شما انسانی حاج اقام من آزادم فائل مختارم هر کاری دلم بخواد انجام میان راست میگی، شما فائل مختاری آزادم هستی اما حرف سر اینه که کار مثبت از سر بزنه نولنگاری، نه قرسیگری نه حرامخاری بعدم حاج من نمیخوام محدود بشم به امام معصوم یا امام عادل که حاکم شری اینم اشتباهته شما خیال میکنید که شخصیت حقیقی یک فرد معصوم یا امام عادل حکومت میکنه نه جان این شخصیت حقوقیشه یعنی وقتی میگیم حاکم شر یا امام معصوم یا امام عادل فساره فهم بودیم؟ این شخصیت حقوقیشه که بر جامعه حکومت میکنه لذا خودش هم میتونه به خودش رأی بده اگر شخصیت خارجیش و کالبود جسم خارجیش بود که خودش به خودش رأی بده این معنا نداره گرفتین چی میگن مومنا؟ حالا گرچه از نظر ظاهری محدود میشه میگی این کارو بکن این کارو نکن این باب شخصیت حقوقیشه و چونکه که معصومه یا امام عادله به نفع افراد بشر مجموعه انسانیه بحث خودمهوری نیست بحث سلطنت تلبی نیست بحث ریاست تلبی نیست بحث خودبینی و خودمهوری هم نیست تو مباعث ایمان تو بحث درمان و علاج که میگیم این گل رو مصرف کن این گل رو مصرف نکن این نوع ماساژ بده این ماساژ نده شما انسانی فایل مختاری میگه هر روغنی دلم بخواد میگیم اشکال نداره اما وقتی کسی بیماره و دوست داره علاج بشه درمان سعی بشه باید حرف متخصص متعهد رو گوش کنه و ترتیب اثر بده تا درمان محقق شد بله که آزادی هرچی بخوری هرچی نخوری اما اگر میخوایی سالم باشی و استمرار سلامتی داشته باشه باید به حرف متخصص متعهد گوش بدی ترتیب اثر هم بدی اگر ترتیب اثر ندی ها هیچ کس نمیتونه تو رو درمان کنه نسبت به کلام خدا نسبت به کلام چارده معصوم هم همینه وقتی تو یاد داریم الله طبیبون یا رسول الله طبیبون دوار بطبهی یا قال الباقر نحن فبيب اطبا حالا باید حرف خدا و پیغمبر خدا و امام باقر و بقیه معصومین رو گوش بدم ترتیب اثرم بدم تا درمان حاصل بشه تا پیشگیری از بیماریا بشه تا درمان به گونه ای باشه که احتمال برگشت بیماری نباشه یعنی شفا حاصل بشه من این حرفای حسن ابن الجهم رو همه رو نقده سازنده کردم یادتون باشه همه رو نقده سازنده انتقاد سازنده انتقاد مخرب نباشه نکته سنجی های وی نباشه تخریب شخصیتی یک دیگر نباشه تمام افراد انسانی هر جای کره زمین هستن با هر دین و مذهبی هستن خودتون رو دوست دارین یا نه بله بله خودمون رو دوست دارین عافیت و امنیت فردی و اجتماعیتون رو دوست دارین یا نه بله محیط سالم می‌خواید یا نه زیست سالم می‌خواید یا نه روابط عمومی سالم می‌خواید یا نه همجه ادامه بده تا مثبت بینهایت میگیم در پرتوه گوش دادن به فرامین خدای احد لاشریک له سرمدی حکم خدا رو گوش بده قرآن مجید عظیم مبین به محکمات قرآن مجید عمل کن قرآن ناطق که چاده محصومه رسول الله حضرت زهراس امیر المومنین علی علیه السلام و یازده فرزند معصومش آخریش هم امام زمان علیه السلام حرفای مشته دین صالح مراجع صالحه شیعه شر امام عادلن گوش بدین عمل کنین اینها کاشفن یعنی حکم خدایی که به توسط خدا در قرآن و در روایات هست کشف میکنن برای من و شما مردم دنیا بیان میکنن هر کسی که در چارچوب اسلام بلایی عمل کنه که اچه از نظر ظاهری خیال میکنه محدود شد ولی به نفعشه تو دنیا و آخرت ایجاد سلامتی تسبیت سلامتی و استمرار سلامتی برای فرد و اجتماع محقق میشه این هم مؤمن ها مطلب همه شما را به خدا میسپارن با ذکر صلوات و محمد و آل محمد اللهم صلی اللہ